و چون به آنان گفته شود همان گونه که مردم ایمان آوردند شما هم ایمان بیاورید میگویند آیا همان گونه که کم خیردان ایمان آوردند ایمان بیاوریم پشتار که آنان همان کم خیردانند ولی نمیدانند